عليكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عذي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أهل في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم محافظا و قاید مناصرا و دلیلم معینام حتی تسکنه ارغا کطوعا و تمتعه فیها طبیلا <تصفح> و عباد الله و بتقوى الله شما ایز زرا و خودم را به سفارش میکنمه اون به انسان عزت میدهد تقواست تقباس اون نورانیت میدهد تقواست شیطان را از انسان دور می کند تقباس اون که توطعه های دشمنان را خونسا می کند تقباس انتصدرو و لا یدرکم چیدهم شیعا اگر من فرمود اگر در شما امت اسلامی دو چیز باشد کید و مکر و توطئه دشمن به شما آسیبی میرساند. اون دو یکی صبر است یکی تقباست اگر شما صابر باشید مقاوم باشید بیستید خست نشوید از دشمن نترسید و تقوا داشته باشید پاچ باشید بنده خدا باشید گول دنیا رو نخورید اسیر هوا و هوس نباشید عاشق مال دنیا نباشید اگر این دو خصلت صبر و تقوا در شما باشد دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه و کید دشمن هم به خودش برمیگردد این نکید شیطان کانا و ایف در آستانه روز مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر لانهی لانه جاسوسی هستیم مناسب است که من این خطور رو در ارتباط با این موضوع قرار دهم. به دلیل اهمیت قضیه. من چند نکته در رابطه با مبارزه با استکرار جهانی خدمتتون عرض از کنم اول مسئله مبارزه با تاغوت مقاومت در مقابل دشمن ایستادن در مقابل توتعه های امریکا و بالاخره سعی بر این که توتعه, ها خونس تو توتعه هاش خونسا این یه مسئله سیاسی نیست فقط هم سیاسی است و هم دینی است هرچند سیاست ما عین دیانت ماست اما این مسئله در دین را ریشه دارد ادله توحید هست انبیاء معمول شدن تمام پیامبران برای پیاده کردن دو مسئله بر بین پیربانشان یکی توحید خداپرستی، یکتاپرستی و دیگر تسلیم نشدن در مقابل تابوت اطاعت تاغوت یعنی پرستش تاغوت تاغوت قرآن می فرمد لقد به اصنا فی کل امتن رسولن عنی عبود الله و جتن عبود تاغوت این همون مطلبی است که عرض کردن الله ولی الذين آمنون یخرجهم من الظلمات الى النور خداوند می‌فرماد مردم دو دسته هستند ادعی خدا را ولی خودشون قرار دادند ادعی تاغوت را معبود خودشون قرار دادند آنان چه خدا را ولی قرار دادند خداوند اونها رو از تمام ظلمت ها بیرون می آورد و به نور وارد میکند و آنان که تابع و به تابع و پیرو تاغوت باشن اینها تاغوت میاد اونها رو از نور کارج می و بارد ظلمتها می ببینید اینها است که در ارتباط با استکبار جهانی قرآن دارند یا جای دیگری می فرمد ولدی نجسن و و یعبدوها و انابو الله دهمل هم آنان که برای انابه به خدا رسیدن به خدا و وصل به خدا خود رو از ساغوت جدا میکنند. و سپس به خدا رو میآورند. اینها باید بهشون گفت چشمتون روشن شما سعادتمندید شما خوشبختید پس این نکته ای اول مکته دوم سکوت و بیاعتی و بیچفاوتی در مقابل تاغوت و توطعه او فساد را گسترش میدهد. آنان که در مقابل تاغوت حساسیت ندارند باید بدانند این امر موجب می شود زمینه رو زمینه فساد رو برای ها فراهم می کند در هر زمانی در هر مقتعی و به نتیجه اینها در تمام فسادهای گسترده صحیح شریک هستند انسان ها دارند نگذارند فساد به وجود آیت نگذارند فساد شایع گردد خدا می فرمد لولا دفع الله ناس با به بعض و فساد الارض این دفاع ها این مقاومت ها این شهادت ها این جنبازی ها موسیب موجب می شود که جروع فساد گرفته شود و جرنم اگر این دفاعها نباشد فساد آلمگیر می شود لفسدت الارض یا می لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضهم لخدمت سوامه و بیاون و سواماتون و مساجد رو یبکرو الله كثيرا اگر این دفاع ها نباشد این مقاومت ها نباشد دیگه اثری از مقابد در عالم نخواهد ماند نه برای یهود معبدی میماند نه برای نصارا و نه برای مسلمین مسجدی باقی میماند سلام خدا بر شهداء سلام خدا بر اون عزهی که جان دادند تا فساد گسترش نشهد به تعبیر مقام معظم رهبری اگر این بفاها و این شهادت نبود معلوم نبود سرنبشت تهران و خوزستان و سایر بلاد به این کشور چی بود و به دست چی میافتاد. دادم دیگری که میخوام اعرض کنم این است که مسئله هرتاغوت فقط نیست قرآن هر وقت نام تاغوت رو میبرد این تاغوت ها این مستقلال های جهانی در چنارش نام از گروهی میبرد که با اونها همراه هستن مثلا این تعابیر قال الملع من قوم فرعون اینها دال صاحر القدیم اون گروهی که همراه فرعون بودن هم صدا و فرعون گفتن موسا صاحری است صاحر است قال گروه همراه با فرعون همصدای با فرعون و به فرعون میگفتن که مهلت میدیم موسا و گروهش قومش بمانند تا در زمین فساد کنند در این زمین آیات است که برای نمونه من دو مورد رو خدمتی تون از کردن نکته <تصفيق> دیگر این که <تصفيق> سالباد <خاطب سرمان. تصفيق> باید آمریکا رو در رأس جنایت ها و خیانت ها بدانیم و بشناسیم است. اما از اروپای همراه با آمریکا هم نباید غافل بود به اونها نمیشه خوشبین بود خود همراهی اونها با اروپا با امریکا خودش نشانه ی خیانت مسئولین نظام ما توجه داشته باشند ما اون کشور اروپایی که همراه با آمریکا است برنامه‌هاش برنامه آمریکاست اونها را هم دشمنان خود و دشمنان انقلاب می‌دونیم بسا. چه بسا اینها ها که به عنوان یک سفر تجاری به ایران میان از این اروپای خائن چه در بین اونها جاسوس هایی باشد در لباس تجارت و میان ضربه بزنن خیلی باید مسئولین مراقب باشند. نکته دیگر تاغوت نمیاد چهره خودش رو آشکار بکنه. یک ظاهر خوبی گاهی نشون میده. تبتون میکنه لبخند میزنه. ما با شما هستیم. ما دوست شما هستیم. ما میخواهیم در یک یکدیگر مشکلات رو حل کنیم. بله میخوان مشکلات خودشون رو حل کنند به تعبیر مقام معظم رهبری دست شدنه آنها را در زیر پوشش مخملی باید دید بیدار باید باشند مسئولین متوجه باشند دقت کنن كه البته بیدار هستند من تأكید میکنم غیزی که اونها از نظام ما دارن که این غیز و عدابت رو در زیر تبسم و لبخند مخفی کردن اون دشمنی و غیز رو باید ببینیم به تعبیر قرآن قل موتو به غیز کن شما از دست نظام عصبانی هستید باشید نمیرید غیظ و دشمنی و عدابت چه پیشنهادی که می کنن به ظاهر به نظر بیاد چیز خوبی است، اما نه در اون دورین جرید امیر المؤمنین می فرماد چه بسا گاهی دشمن پیشنهاد آتش بس می دهد. شنا صلح میده اول بررسی کنید ببینید این صلح رضایت خدا در یا مسرحت هست یا نه مسرعت امت بر هست یا نه و اگر این صلح رو پذیری پذیرفتید نکتی اینجاست فرمود ولیکن الحذر کل الحذر من ادب که بعد صلح اگر دیدید چیزی صلحی مس داره پذیرفتید دیگه بکسون راحت نباشه. دیگه دیب دیگه تموم شد. نه بر هزار باشید صد در صد بر هزار باشید از دشمن بعد از صلحش چه وتاب پیشنهاد صلح میدهد که شما را خواب کند غافل کند. ما در اون لحظه غسلات ضربه خودش رو کاری بر شما وارد کنند فانه ربما قاره با خوب به همدلله این آقای ترامپ با این برنامه ابلهانه اش این معنا رو خوب روشن کرد قدی ها هم همین جور بودن بلی چند این حرکت ابلهانه خوب این مسائل رو روشن کرد که اینها چه اناسری هستند مسئله دیگر که باز در این نکته عرض می دارین جایان عرض می این که نبادا در مقابل دشمن حالت انفعال به خود بگیرید. نه نه شما باید فعال باشید توتعه هایی که دشمن دارد به خوبی بشناسید و قبل از آنکه او توتعه ها رو به اعمال کند ضربه رو وارد کنید که نتونه توتعه رو اعمال کنه فرماد که یوارو علیکم ولاتو غیرون و تغذونا تغزون تغذون و یقصد الله وترضون والله الله ما و ذی قوم فی اقدارهم ایلا بدل اگر دشمن حالت حمل داشت برنامه نقش داشت برنامه و نقش داشت بشناسید و به او ضربه بزنید که این شامل مقصود این نیست که ما چه رو دنیا میدونه جنگ طلب نیستیم مقصود این است که امت بیدار باشد توطئه ها رو بشناسد و قبل از اون که دشمن دست به توطعه بزند نقشه او رو نقشه برقاب کند بر رابطه با امر به معروف کنه از منچر هم مسئله همینه این مفسدانی که گاه گاهی فسادهای عجیب می کنند به خودشون می به بسیج حمله کنند به روحانیت حمله کنند ضربه بزنند احیاناً به تونن بکشند اینها را باید اون گروهی که در این زمین مسئولیت دارند یه برنامه عمیق حساب شده داشته باشن که به این جنایتکاران مجال داده نشود که اینها اینطور جنایاتی رو اعمال کنن نکته دیگر این که برای طاقوت طاق انسانیت مطرح نیست فضیلت مطرح نیست تقوی مطرح نیست اونها اصلا اسلام رو و فضیلت رو و تقوا رو و پاکی رو نفهمیدن نه, نه شناختن و نه پایبندند و نه باور دارن اونا دنبال خودشونن و دنبال منافع خودشون هستن این فرعون هستی میجی علی سلی ملک و مصر و ها به الانهار من تحتی افلات و بسرون ام انا خیر منها دلدی هوا مهین ملایقات و یبین فهالله علقی علیه اصورتون من زهب دنیا در نظر و نگاه جل یادی از آن غیر از پرستش خود و خدایی کردن خود نشناختن نفهمیدن لذا تعهدی هم که میکنه دشمن امریکا هر جا ببینه منافعش به خطره فورا زیر پا میگذاره تعهدره و مرحبا به رئیس جمهور که ایشون سریحا فرمودن که عجیبینش اینها میجن باز مزاچره کنیم نامرده شما مزاچره هستی که چبدید پا گذاشتید باز سبقه خود دارید که ایران با شما مزاچره کنه خب اینم هم جه که باید تاغوت رو شناخت به فهمیم قرآن تکلیف ما رو با این مستکبران جهانه مغرور متکبر مشخص کرده قل یا ایوها کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی یا دین وقت شما در یه جهان هستید ما هم در یه جهان دیگری هستیم شما در یک فضا هستید ما در یک فضا دیگری هستیم ما دنبال انسانیت و تقوی و فضیلت و خدمت به خلق هستیم شما به دنبال ضربه زدن و کشتن و غارت کردن و سوزندن و اینها هستید ای آب ما به یک نمی و مزاکرات با این نیات کسیف شما فایده نداره و دیگری رو اعز کنم که در این رابطه اشارهی هم به عربعین بکنم با اون این که قرآن میفرماید وقتی بروحی رو قرآن می ما نابود کردیم میفرماد و ما خلقنه سماوات و الارض و ما بینهما لاعبین ما لغردنا انتخیداله بندتخیدنا همی لدننا این کننا فائنین بل نقبه و بالحق الباطل پید مغره فاذاه و زاهق طرفداران حق خوشحال باشید این بعده قطعی خداست می فرمود که ما برناممون که این نیست که ظالمت جنایتشون رو بکنن و سیری نخورده در برن از ساحل سیلی رو میزنیم یا در دنیا هم مجازاتشون میکنیم و یا آخرت میفرماد ما حق و ماموریت میدیم که به سراغ باطل رابد و هر کجا چه باطل رو دید زردی محکم بزند و او رو نابود کند اهل ادبین به این ویجه ها کنن در این آیه شریفه بند نقد فو بالحق لحق على الباطل فیض یکی کلمه قض یکی کلمه دم باطل رو نشونه میگیریم و حق رو محکم میزنیم به باطل مانند کسی که زربه میزنه به طرف به مغزش میزنه مغزشو رو متلاسی میکنه ضربه که باطل وارد آمد دیگه نگاه می‌کنید می‌بینید باطلی نیست کو غرور شاهنشاهی کو غرور صدام کو غرور جانیان کو ماجرا باور می‌کرد که شاه به این سادگی از بین برود مگر باور می‌کرد گفتن پشتوانه جهانی داره ما یه دفعه دیدن یه حرکت مردم چردن نابود شد. چه قرآن می‌فرماد مثلا کلمه خدیفه که شجره خدیفه و جتلت من و جتلت من فوق الأرض مالها من قرار یه بوته روی زمین کافیس یه نفر محجم بوته رو بگیره از ریشه ریش میشه تموم میشه. بوته اینه؟ آقای ترامپ منتظرم این, این روز باش ما بدون باطل مثلش اینه فاذا هو ذاهق و له ول من ما تصفون اما حق چی دربالله مثلا چال م تم ت یه ثابت ت و فرعها به در رخت محجمبریشه در زمین داست شاخه ها به آسمان وقتی در هر فصلی میوه میدهد. می و این در رو نمیشه چند؟ اون مندنیست اون مندنیست و در هر وقتی و در هر فصلی میوه خواهد داد قتله امام حسین فکر میشهدن دیگه تمام شد یزید فکر می‌کرد که دیگه وساط بلی هاشم به کلی رفت بربست تمام شد دیگه گفتن زدیم و پشتیم و بدنها را اوریون انداختیم و و ربتیم خیال می شدن دیگه از کنم که امر دست اونهاست عجب احنق بودن عجب احنق بودن یزید سر امام حسین جلوش بود میگفت یا حسین اینا غلب به امام حسین میگفت کدوم یکی از ما برنده شدیم بدبخت سر از آتش جهنم بردار ببین نهزت حسینی چی کرده تو غالب شدی یا امام حسین حرکت اربعین رو ببین 20 میلیون انسان های دلداده به ابی عبدالله رو ببین که دارن در بخشی از سفرشون پیاده به کربلا میرن چی غالب شده؟ نه امروز رو نمیخوای ببینین اربعین اون روز رو ببین تو در رأس حکومت ننجین عموی بودی یزید و در زمان تو در چربلا فریادهای لعنه بر تو و سلام بر امام حسین بلند بود در خود شامی که تو حکومت می شام علیه تو شورید و دست دست مردم از زن و مرد میومدند به به اهلالبی تسلیت می زنان به حضرت زینب مردان به زین العابدین تسلیت میگفتند مجلس عزاداری تشکیل شد تمام جنایاتت یزید همان روز بر ملا شد و با سرعت نفرت و امزجار مردم به تو متوجه شد بله اهل بیت چربلا رفتند چربلا قوا بود اسراء برگشتند عسراءی که ریسمان به بازوهاشون بسته شده بود زین العابدینی که قل و زنجیر به گردنش انداخته شده بود برگشتن هم ناله میزدند و هم در این نداله خبرگان آدم و عقلا میگفتن این جشن است این پیروزی این عزت است این کرامت است البته قاعده هر کدوم از این اسرا هم در وول داشتند. در مقاتل چیزی از این نیامده اما ما می میتونیم حدس بزنیم زینب با امام حسین چی میگفت سفر سفر مأموریت بود حضرت زینب یه معموریت داشت چی خوب معموریت انجام داد گزارش کارش رو لازم نبود به برادر بگی خود میدانست ولی شاید با برادر سر قبر امام حسین زمزم هم داشت هرچی داشت صرف بود فکر میکنم در یک مورد بود حضرت زیره ب... ناراحت بود از گفتن این جمله با اون این بود شاید میگفت برادر همه وضاعف رو انجام دادم بچه ها تو به من سپردی همه رو برچردوندم از اونها حفاظت شردم اما برادر شرمنده هستم دخترتو نتونستم بیاره رقیه رو در شام گذاشتم و آمدم و این گذاردن این عزیز خدا در شام مهد قدرت یزید خود یکی از حکمتهای بالغه الهی بود که دلهای اونها را دلهای مردم را به سوی اونها جد بچه ها هم لابد با بابا حرف دل داشتن اونام صحبت می شردن. شاید پای پر آبلشون و نشون می دادن. شاید می بابا ببین صورت ما هنوز آثار سیدی روشه هست بابا دستور دادی ما با عزت و چرامت این سفر اثارت رو بگذرانیم ما گذراندیم ما گرسنه بودیم اما نگفتیم ابراز نچردیم. ما تشنه بودیم احیانا به ما آب درستی نمیدادن هیچی نگفتیم بله هرچی میگفتند در این زمینه بود شاید میگفتند بابا در یک جا بود که دیگه ناله ما بلند شد. دیگه ما نتونستیم خودمون رو حفظ کنیم ما اون وقتی بود دیدی به لبای تو دارن چوب میزنن اینجا بود که بچه ها بلند شدن سرشون رو بلند کردن نگاهی به سر بریده کردن چون یزید اصراع را پشت سر خودش در یه جای مرتفعی نشنده بود میتونستن بچه ها دان رو بکشند دو سر باباشون ببینن، پس سر بریده رو دارن میبینند جنایات یزید رو هم میبینند یه وقت به گفتن گفتند امه نگاه کن ببین یزید داره چی میکنه داره به لبهای داره منچوب میزند بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب ما أغنوا عنه ماله وما كسب فجسلا نارا ذات لهب ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حب من مسد السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك صل على علی امیر المؤمنين صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين صل على صباح الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجمه نصلي على عمت المسلمين علي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي علي بن محمد والحسن بن علي والقرف الصالح والحجة القائمة اللهم عجل فرجه و سهل المخرج منصورنا نصر عزيز وافتح له فتحا نسيرا مناسبت های زیادی است خطبه اول یک مقدار طولانی شد ناچارم در خطبه دوم رو با اختصار بگذرانم اجلاس سران کشور ایران و روسیه و جمهوری آذربایجان را داشتیم دستاوردهای های خوبی داشت یک تحکیم هرچه بیشتر روابط بود دو به همدلله اقتدار نظام جمهوری اسلامی مورد اعتراف قدرت‌های دوست و دشمن مشخص شد سوم آن در این دیدار به خوبی موج می زد احترام پوتین به نظام جمهوری اسلامی و شخص رهبری بود از اونجا که این مذاچرات مشروحا از سیما دیدید نیاز نبیبینم دیگه تکرار کنم هم. روز نوجوان رو داریم روز دانش آموز رو داریم روز بسیج دانشجویی رو داریم شهادت نوجوان سیزده ساله محمد حسین فهمیده در سال 1359 رو داریم این عزیزی که در این سن کاری کرد که امام الله نقامه فرمود رهبر ما این نوجوان سیزده ساله هست خیلی مهمه انقلاب چه کرده آقایان گاهی آقایان برادران خواهران گاهی تعمل کنید انقلاب چه کرده چی ساخته فهمیده ها ساخته خجدی ها ساخته این نوجوان ها و این جوان ها استعداد دارن به این مقامات عالیه رسیدن و اینها چه رسیدن هنوز فراوان هستن افرادی که این آمادگی رو دارن اما من توصیه میکنم به مسئولین دبیرستون و دبیسون و دانشگاه ها آقایان آقایان این مغزها امانت خدا نزد شماست همون امانتی که فرمود اینا عرضنا الامانه على السماوات والعرب والجبال اهمیت امانت رو فراموش نکنید در دو طرف سراط که در قیامت باید عبور بکنیم از روی سرات همه ما در دو طرف سراط پیوسته دو سوال مکرر می شود از عبور کننده یک راجعه به امانات دو راجع به رحم و فیشابندی اگر چسی کتاه بیاد همون جمعی توی جهنم امانات رو مراعات کنید این مغزها رو احترام بگذارید حافظه قبی نوجوان و جوان که میشود در این فصل سرمایه های معنوی در آنها ایجاد کرد روحیه های قبی ایجاد کرد دانش را به اونها آموخت که فراموش نکنن بله قدرت انقلابه این قدرت ریش از قدرت نهضت رسول اکرم داره یک سنه از هرام پایین جهان دست کن میده و دو کشور ایران و روم متزلزل میشن این خدرات حق است خدرات حق است، قدر حق رو بدونید مبادا از مسیر حق انحرافی پیدا کنیم اون نوع جوانها و جوان هایی که در فرهنج مبتزل غرب در دوران رژیم منحت شاهنشاهی گرفتاری ها دیده بودند و دل به مادیات بسته بودند انقلاب شد به طور کلی متحول شدند چی بودند چی شدند من دورانی که در چرمون شاه امام جمعه بودم می آوردن مجروحین را ایادت می کردیم ایادت کردم از یک نوجوانی مدود سن 15 سال بود فکر میکنم گفته باشم وقتی احوالشو پرسیدم همراهان من به من گفتند این نوجوان چه اوائل بلوغ هست نه دست داره نه پا داره هر دو دستش و هر دو پاش قطع شده متاثر شدم دلداریش دادم دیدم نگاهی به من چه؟ دو فلانی چیزی نشده من چی کاری نکردم این کلمات او هنوز بعد از نمیدونم چقدر در ذهن من هست چیل پنجاه سال بیشتر در فکر من و مغز من هست و فلانی ما چی کاری نکردیم بعدا اضافه کرد گفت من رفوظه شدم برد شدم قبول نشدم اشاره کرد به عکسی که بالای سرش بود ظاهرا عکس برادرش بود شهید شده بود گفت او پیروز شد او قبول شد ای چه روحیه هست این انقلاب این روحیه رو داده مسئولین برای رضای خدا این انقلابو حفظ کنید مردم بفهمن شما خدمت گذارید البته هستید ولی بهتر نشون بدید اونایی که پولهاشون گذاشتن و الان هم سر هستند هستن بهتر بهشون برسید مبادا خدای نچده در نظام ما در بین مسئولین ما مسئولی فردی باشد که اسیر دنیا باشد مبادا اسیر مال و سربت باشد حقوق بعض افراد رو در حد ده میلیون رسان بسیار خوب اما آیا به فکر اون بیچاره که در اون زیر زمین و در اون چاه ها و در زهار سندگوین ها داره به سر میبره به فکر حقوق و همپبو هستید؟ در فکر بیچارگان هستید؟ اونهایی که نمیتونن نسخشون رو بگیرن آیا در فکر اونها هستید؟ اونها که نمیتونن بالاخره یه خانه رو اجاره ای داشته باشن چون اگر بخوان اجاره هم بکنن میگن این مبلغ باید جلوتر بده و نداره بده بانج با مراجعه میکنه میگن زامن بیار زامن نداره ادلاف میمونه ناله میزنه این ناله ها اصل خودشون میزاره ها هماسمون جمع باشه الملقیت قامل کو فربلا یا قام اول زن انها و اقسام داره فقط زن که سربریدن داعش مدعون نیست ظلم میچردن به داد مظلوم نرسیدن در هر سطحی که باشد خطره در هر سطحی که باشد خوب ارز کنم که تبدیل حضرت امام به ترکیگه رو داریم در سال 1343 سه شهاد مورد هستی ناچارم به دلیل کمی یا گذشته وقت دیگه من اشاره ای بکنم شهادت آیت الله قاضی تبا تبا امام جمعه تبریز اولین شهید محراب رو داریم در سال 1358 می‌شد. حمله دجه ایمان رژیم تهرانی به دانش آموزان، دانش یویان در دانشگاه تهران در سال 1350 و هفت. این داریم. من در این جلادم می دونم به برادر عزیز گرند قدرم، سردار لشکر، سردار رشید اسلام. یار و یاور امام و رهبری بازوی توان انقلاب خار چشم اعدا برادر گرانقدرم سردار حاج قاسم سلیمانی در گذشته والد مکرمشون را والد مکرمشون را تسلیت گویم و برای اون مرحوم غفران و برای این عزیز طول عمر و موفقیت چه بیشتر از درگاه خدای متعال داریم الله بعد از نماز ظهر و عصر ما در مقابل جنازه پنجاب و دو نفر از شهدائی جا ناجا هستیم که بیس و سال قبل در منطقه عملیاتی دهلوران و مهران ظاهرا با لب تشنه شهید شدند. برادر عزیزم سردار اشتری توضیحاتی دادن خیلی جنسوز بود خانواده های متدجن اونها و خود اون عزیزان مقاومت اونها و این مردم خوب در آن زمان اینها در جاندار و امروز هم نیروهای انتظامی خوب فعالن خوب دارن کار میکنن واقعا جای افتخار هست برای ملت این نیروی انتظامی این سفاه این ارزش این بسیش همه اینها مایه های افتخاری برای ما هستند. و خاچ به سر اونهایی که ارزش خدمات اینها رو نشناختن خاچ به سر آمریکا که میگوید سپاه یک, یک تروریست هست سپاه یعنی این ملت و ظاهران تخواه هم کردن که مردم ایران اصلا تروریست هستن خدا انشالله ترو تروریست ها را که در رأس اونها شما ها هستید نابودتون کنه خدمات نیروی انتظامی متعدده یکی در شهرها امنیت رو تأمین می میکند این نعمت بزرگی است نعمت امنیت در مناطق جنگی غرب و جنوب کاملا حضور دارند حضور داشتند الان هم در مبارزه با اشرار خوب فعال هستند و الان هم شهید میدن در تعبیر خودشان در شهادت به روشن بازه بالاخره این فضائل پراموش نشده نیست مستطوده نیست عزت رو برای این نیروی مسلح و سایل نیروها از خدای متعال مسئلت رو درخواست میکنیم. برای این شهدائی که آماده برای تشکیعشون هستیم غفران و آمرزش و رحمت الهی رو مسئلت میکنیم و بالاخره برای تمام خدمتگزاران به نظام آرزوی موفقیت کامل رو داریم بسم الله الرحمن الرحیم علم ترکی فعلا ربک به اصحاب الفیل علم یجال قیدهم فی تبلیل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قرائش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربها دل بيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسمك الأعظم يا الله یا الله، یا الله، یا الله، یا الله یا سسیده پربردگارا به محمد و آل محمد سلوات و برکات و صحیات اترا بر پیغمبر اچرم به خاندان مکرمش نازل بفرماید وجود مقدس حضرت مهدی را ادولیات مسئل بدار در فرج حضرتش تعجیل بفرمان ما را در دمره امسار و اعوان و مستشهدین بین یدعی قرار بده دشمنان دین دشمنان قرآن در رأسش آمریکا و اسرائیل و رژیم سعودی و سایر کشورهایی که همراه با این جانی خطرناک آمریکا هستند خدایا شرشون را به خودشون برگردان خداونده ما را در دمره امثال دینت قرار بده امبات باردین زب حقوق رحمت فرمان بیمار و فرمان را طول عمر و سلامتی کامل طول عمر سلامتی کامل عنایت بفرمان این وجود فر مبارک را به ظهور حضرت مهدی متصل بفرموام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته